این داستان کتوله یکی بود یکی نبود زیر گنبد آبیا حاسمون پادشاه ثروتمندی بود که سه تا دختر داشت دخترها عادت داشتند که صبح تا غروب در باقای دوروبر قصر قدم بزنند پادشاه به درختهای باغش خیلی علاقه داشت به خصوص به یکی از درختهای سیب که می گفت اگر کسی حتی یکی از سیب‌های اونو بچینه اونو زنده به گور میکنه. فصل تابسون که رسید سیبای این درخت که به سرخی خون بود روی شاخه‌ها جلوهی وسوسه انگیز پیدا کرد شاهزاده خانوما هر روز پای این درخت می‌اومدند به امید اینکه باد یکی از این سیب‌ها رو به زمین بندازه ولی باد هم نمی‌تونست سیبا از شاخه‌ها بکنه سرانجام دختر سومی که حوص کرده بود سیب بخوره به خواهرش گفت پدر ما رو بیشتر از این حرفها دوست داره. هرگز رضایت نمیده که ما رو زنده بگور کنند. منظورش قریبه ها بود نه ما. با گفتن این حرف یکی از سیب ها رو چید و نزد خواهرش برد تا مزه سیب رو بچشند. به محض اینکه سیب و گاز زدند، زمین زیر پاشون دهان باز کرد و اونها رو در قر زمین فرو برد. کم کم زوح شد، پادشاه چشم به راه دختراش بود، ولی از اونا خبری نشد. خدمتکارا رو فرستاد که تمام باغ و دوروبرش رو بگردند، ولی باز هم فایده ای نداشت. سرانجام پادشاه دستور داد، جارچیان در شهر جار بزنند که هر دخترای پادشاه رو پیدا کنه میتونه یکی از اونها رو به همسری برگزینه جوانای زیادی از راه زمین و دریا سفرهای دور و دراز در پیش میگرفتند تا بتونن شاهزاده خانوما رو پیدا کنند. در میان اونا تا برادر جوان شکارچی بودند که بعد از هشت روز سیر و سفر به قصر بزرگ رسیدند. اتاقهای قصر به طرزی با شکوه تزین شده بود در یکی از اتاقها با میز نهارخوری بزرگی روبرو شدند که غذاهای رنگ, رنگ و خوشمزه روی اون چیده شده بودند ولی کسی یا جنبندهای در اون دور و برد دیده نمیشد حتی صدایی هم شنیده نمیشد بو و طعم غذا نشون میداد که میز و تازه چیدند اون تا شکارچی تا وسط روز منتظر موندند تا شاید کسی به سالن غذاخوری بیاد. ولی از کسی خبری نبود. شکارچی ها گرست بالاخره بالاخره دور میز نشستند و هرچی دلشون میخواست خوردند. بعد از غذا بین خودشون قرار گذاشتند که هر روز یکی از اونها در قصر بمونه و دوتای دیگه به جستجوی شاهزاده ها برند. برای اولین روز قرعه کشی کردند و قرعه به نام محسن ترین شکارچی افتاد که در قصر بمونه. روز بعد دو برادر جوانتر در جستجوی شاهزاده خانم ها از قصر بیرون رفتند و برادر بزرگتر در قصر موند. ظهر که شد کوتوله وارد سالن غذاخوری شد. اون تیکه گوشت کبابی به همراه داشت که اونو به چند تکه کوچک تقسیم کرد. چند تا از اون تکه های کوچک به شکارچی تعرف کرد. اما وقتی شکارچی دست دراز کرد تا تکه ای رو برداره، یکی از اونا روی زمین افتاد. کتوله ازش خواست که تکه کباب و از روی زمین برداره. اما وقتی شکارچی خم شد، کتوله پرید پشت اون، موی سرشو رو کشید و اونو زیر زربات مشت و لگت گرفت. روز بعد که برادر وسطی در قصر موند، همین ماجرات تکرار شد. و اون هم حسابی کتک خورد. روز دوم وقتی دو برادر به قصر برگشتند، برادر بزرگتر از برادر وسطی پرسید که اون روز چه خبرا بوده. برادر وسطی گفت چه بلایی به سرش اومده. بعد برادر بزرگتر هم گفت که روز اول بر اون چه گذشت؟ ولی اون از ترس چیزی به کسی نگفت. برادر سومی این ماجره ها رو شنید و روز سوم نوبت اون بود. مثل روزهای گذشته کوتوله در حالی که گوشت در دستش بود وارد اتاق شد. باز هم وقتی که تک گوشت روی زمین افتاد اون از برادر جوان خواست که اونو برداره. ولی برادر جوان تر به کوتوله گفت چی؟ چرا خودت ور نمیداری؟ تو که میتونی زندگیتو با زور بازواد بگردونی؟ چه دلیلی داره این تیکه گوشت رو نتونی از روی زمین برداری؟ جواب تند و تیز جوان کوتوله رو سخت عصبانی کرد ولی قبل از اینکه بتونه حرکتی بکنه شکارچی جوان پرید محکم یقش رو گرفت و کتککاری شروع شد کوتوله که انتظار چنین رفتاری رو نداشت زود تسلیم شد و گفت خواهش میکنم دست نگهدار اگه به من امان بدی جای شاهزاده خانم ما رو بهت میگم جوون شکارچی از کتک زدن دست برداشت و کتوله گفت که اون از کتوله های زیر زمینه و در زیر زمین هزاران نفر مثل اون زندگی میکنند. بعد گفت که اگر کسی همراهش به زیر زمین بره اون میتونه محل زندگی شاهصاد ما رو که چاه عمیق و خوشک و بیابیه بهش نشون بده. کتوله در ادامه گفت که مطمئنه برادرهای جوون با اون رو راست نیستند و اگر میخواد شاه ساده خانمه رو نجات بده باید به تنهایی دنبال این کار بره. بعد گفت که برای رفتن به داخل چاه باید توی یه زنبیل بزرگ بره و کارد جنگلبانان رو نیز به همراه ببره. و بدونه که ته چاه تا اتاقه و هر کدوم از دخترای پادشاه تو یکی از اونها زندانی هستند. نگهبان هر اتاق هم یک اجده های چند سره که اون باید تمام سرهاشون رو از تن جدا کنه. کتوله به محض اینکه این حرفا رو زد ناپدید شد. سر شب برادرای دیگه از جستجوی بی برگشتند و از برادر کچکتر پرسیدند خوب چه خبر؟ اون جواب داد نزدیک ظهر کتوله اومد با یه تیکه گوشت. وقتی اونو خورد کرد یکی از تیکه ها روی زمین افتاد. اون از من خواست که اونو بردارم. ولی من امتنا کردم. اون داشت به من حمله کنه. ولی من پیش دستی کردم و اونو حسابی کتک زدم. اونم مجبور شد محل زندگی شاهزاده خانیما رو به من بگه تا دیگه نزنمش. برادرای بزرگتر این داستانو که شنیدن سخت آزرده و خشمگین شدند. روز بعد ستایی بالای تپه رفتند و قره کشی کردند تا معلوم بشه چه کسی اول داخل زنبیل بره. نتیجه قره کشی مثل دفعه قبل به برادر بزرگتر افتاد. باید با زنبیل به ته چاه می رفت. اون ای به دست گرفت و گفت که هر جا خطری باشه زنگوله رو به صدا در میاره و برادرای دیگه باید تناب رو بکشن و اونو نجات بدن. برادر بزرگتر همین که کمی با تن پایین رفت، ترس برش داشت. زنگوله رو به صدا در آورد و برادر اونو سریع بالا کشیدند. برادر دوم داخل زنبیل رفت. اما اونم نصفه راه زنگ و به صدا در آورد و بالا اومد. دیگه نوبت برادر سومی بود. اون تا ته چاه رفت. بیمهابا از زنبیل بیرون اومد و در حالی که کارد خودش رو آماده کرده بود، به طرف اولین اتاق رفت. صدای خرنص اجدهها شنیده میشد. اون آهسته در را باز کرد و از لای در یکی از شاهزد رو دید که در گوشه کز کرده بود و نه سر اجدهها در دامانش قرار داشت. شکارچی با حرکت زیرکانه در یک چشم به هم زدن سرهای اجدهها را از تنشون جدا کرد. شاهزاده خانم که از خوشحالی تو پوست خودش نمی‌گنجید به طرف شکارچی رفت و گردنبند طلای خودش را به عنوان پاداش بهش داد بعد از تمام شدن این کار جوان به سراغ دومین شاهزاده رفت این شاهزاده خانم اسیر یک های هفت سر بود شکارچی جوان اون رو هم از اسارت نجات داد دختر سومه در چنگال اژدهای چهار سر بود که مرد جوون این جونور رو هم نابود کرد. دخترای پادشاه خوشحال و زوغ زده بودند. شکارچی زنگوله رو به صدا در آورد و دخترا رو به نوبت در زنبیل گذاشت تا برادراش اونا رو بالا بکشند. دیگه نوبت خود شکارچی بود که با تناب برادرها بالا بره. اون ناگهان به یاد حرف کتوله افتاد که گفته بود برادراش باهاش رو راست نیستند. برای همین یه که سنگ بزرگ در زنبیل گذاشت. برادرها تا نیمه راه زنبیل و بالا کشیدن و, و بعد تناب و پاره کردند. زنبیل با سنگ به ته چاه افتاد. دو تا برادر فکر کردند که با این کار سومی رو کشتند و برای همیشه از شرش خلاص شدند. بعد هم به دخترای پادشاه گفتند، میخوایم به پدرتون بگیم که ما دختراتون رو نجات دادیم. شما هم باید قول بدین که صداتون در نیاد. همین کارو هم کردند. دخترانو به قصر پادشاه بردند و اعلام کردند که شاهصاد خانمها رو نجات دادند و خانم خانمها باید با اونا ازدواج کنند. در این میون برادر کوچکتر در اتاقها قدم میزد. ناراحت و سرگردون بود و فکر می کرد که باید اونقدر اونجا بمونه تا بمیره بعد چشمش به یک فلوت افتاد که روی دیوار نصب شده بود جوان به خودش گفت این فلوت اینجا چی کار میکنه؟ چه کسی ممکنه اونو بنوازه؟ بعد به سرای اون سه اجده ها لگتی زد و گفت کشتن شماها چه فایده ای داشت از دست شماها که کاری بر نمیاد؟ و با این کشمکش های درونی در طول و عرض اتاق قدم می‌زد. بالاخره حوصلش سر رفت با بیحسلگی فلوت و برداشت و شروع به نواختن کرد با این کار تعداد زیادی کتوله در اتاق جمع شدند و با هر بار دمیدن بر تعداد اونا اضافه می شد. تا اینکه اتاق پر از کتوله شد کتوله ها پرسیدند چهار زویداری تا براوردش کنیم شکارچی گفت که دلش می‌خواد از تاریکی اونجا خلاصش کنن و از داخل چاه به بیرون روی زمین برگرده بلا بلافاصله هر کدوم از قتوله ها یکی از موهای اونو گرفتن و با اونها اونو از ته چاه نجات دادن. همین که از چاه بیرون اومد به طرف قصر شاه رفت. هنگامی وارد قصر شد که شاهزاده خانم‌ها در تدارک عروسی بودند. و با عجله به اتاق پادشاه رفت. شاه با سه دخترش اونجا نشسته و سرگرم گفتگو بودند. ورود برادر سومی برای اون دخترا آنچنان غیرمنتظره بود که قش کردند و کف اتاق افتادند. پادشاه از زیدن این صحنه سخت خشمگین شد و دستور داد تازه وارد و به زندان بندازند. هنوز دستور پادشاه اجرا نشده بود که دخترها به حوش اومدند و از پدرشون خواستند که از دستور خودش صرف نظر کنه. پادشاه دلیل رو پرسید. اما اونها گفتند جرعت نمیکنند واقعیتو واقعیت رو بگن. پادشاه دستور داد که حرفاشون رو به اجاق بگن. پادشاه رفت و از اون طرف اجاق حرفای اونها رو شنید. وقتی پادشاه به حقیقت پی برد، دستور داد تا اون دو تا برادر خائن رو به چاه بندازن و بعد کوچکترین دخترش رو به عقد شکارچی جوان و نجات دهنده دختران در آورد. من راوی هم به اون عروسی دعوت شدم. کفش شیشه ای به پا داشتم که در اونجا اونو به دیوار کوبیدم و خورد شد. کانال تلگرامی هزار افسان